روباه دانا و آسیابان فقیر داستان نقل شده از بانو سمی روفی از گرگان روزی بود روزگاری بود روباه زیرکی کنار کلبه مرد آسیابونی زندگی میکرد یه شب خیلی سرد که روباه هیچی برای خوردن پیدا نکرده بود از شدت سرما و گرسنگی به کلبه آسیابون پناه برد به اون گفت اگه جای گرم برای خوابیدن و غذای خوب برای خوردن به من بدی دختر پادشاه را برات خواستگاری میکنم آسیابان خیلی تعجب کرد باورش نمیشد بتونه به این راحتی با دختر پادشاه ازدواج کنه اما با این حال حسابی از روباه پذیرایی کرد صبح روز بعد روباه به آسیابون گفت به من چند روز فرصت بده تا نقشم و عملی کنم. روباه نقشی درست حسابی کشید و به طرف قصر پادشاه رفت. وقتی به قصر رسید از پادشاه خواست یک علک به اون قرض بده. پادشاه گفت علک رو میخوای چکار کنی روباه پیر؟ روباه سرشو بالا گرفت و گفت من نوکر یه مرد من شدم. اربابم میخواد پولای یه تومانی دو تومنیش رو از هم جدا کنه و چون که پولاش خیلی زیاده با دست نمیتونه اونا از هم سوا کنه به خاطر همین با علک میخواییم این کار رو بکنیم. پادشاه که خیلی کنجکاف شده بود علک رو به روباه داد. فردای اون روز روباه با چند تا سکه دو تومانی که داخل علک گذاشته بود به قصر پادشاه رفت. وقتی پادشاه علک رو گرفت گفت چند تا سکه طلا داخل علک جا مونده. روباه خندید و گفت این که چیزی نیست. من یه عالمه از این سکه ها رو توی راه بین مردم تقسیم کردم. اربابم خیلی از این پولا داره. فردای اون روز روباه دوباره به قصر پادشاه رفت و از اون برای سوا کردن سکه‌های پنج تومانی از دو تومنی درخواست علک بزرگتر کرد پادشاه فکر کرد چقدر این اربابش ثروتمنده مثل اینکه ثروت اون از منم بیشتره پادشاه دستور داد یک علک بزرگتر به روباه بدن و از اون خواست که اربابش رو به قصر دعوت کنه روباه باهوش که منتظر چنین فرصتی بود با خوشحالی علک رو گرفت و به سمت خونه آسیابان رفت و از اون یه سکه تمنی گرفت و داخل علک گذاشت تا برای پادشاه ببره وقتی روباه علک رو برای پادشاه برد به اون گفت اربابم دعوت شما رو قبول کرده و خیلی مایل از شاهزاده خانم خواستگاری کنه پادشاه با خوشحالی منتظر اومدن مرد ثروتمند شد. اما آسیابون بیچاره لباس مناسبی برای مهمونی نداشت. تمام لباساش کهن پاره بود. روباه که اصلا به این مسئله فکر نکرده بود دومش رو جمع کرد و چشماش رو چند ثانیه بست. بعد یه دفعه برقی تو چشاش افتاد و فریاد زد فهمیدم چی کار کنیم و از آسیابان خواست همون لباس کهنه ها رو بپوشه. آسیابان هم لباساش رو پوشید و به راه افتاد. وقتی تو راه برود خونه رسیدند، روباه به آسیابون گفت لباسات رو در بیار و بنداز داخل این آب و همینجا صبر کن تا من برگردم. آسیابان بیچاره که از نقشه روباه سردر نمی آورد، گفته اون انجام داد و منتظر وایستاد. روباه که یک نقشه درست و حسابی کشیده بود وقتی نزدیک قصر پادشاه رسید داد و فریاد را انداخت. پادشاه با شنیدن صدای داد و فریاد روباه از قصر بیرون اومد و گفت چیه چه خبر شده چه اتفاقی افتاده. روباه فریاد زد دوست دوست. تو راه که میومدیم دزدا به ما حمله کردن و همه لوازممون رو به غارت بردن حتی لباس های ارباب ما از تنش درآوردن و بردن پادشاه با خودش فکر کرد حتما لباس های خیلی گرانبه هایی داشته که اونا رو دزدیدند پس دستور داد یه دست لباس خیلی قشنگ و یه اسب سفید برای مهمونش ببرن. آسیابان ها را پوشید و سوار اسب شد و همراه خدمتکارای پادشاه به قصر رفت وقتی به قصر رسیدند میز شام را چیده بودند و همگی برای خوردن شام آماده بودند آسیابان بیچاره که تا به اون موقع همچین غذاهایی ندیده بود شروع به خوردن کرد کمی از این کمی از اون طوری که قضا خوردنش اصلا شبیه اربابا نبود و نزدیک بود نقشه روباه برملا بشه و همه زحمتاش هدر بره. روباه زیرک هم بیکار ننشست و دومش رو تکون داد و شعمای داخل اتاق خاموش شدن. تا خدمتکارا شما رو دوباره روشن کنن، توی تاریکی ظرف غذای آسیابان را پیش پسر پادشاه برد. وقتی شما روشن شدند، پادشاه به ظرف غذای آسیابان نگاه کرد و قبل از اینکه چیزی بگه، روباه گفت: اربابم آشپز مخصوص داره و ذائقهش قبول نمی کنه که هر غذایی رو بخوره. برای همینم نیمی تونه که دستپخت آشپز شما رو با لذت بخوره. پادشاه هم که دیگه باور کرده بود که آسیابان مرد ثروتمند و اسییه از داشتن همچین دامادی خوشحال شد و دستور داد از فردا شب جشن عروسی رو شروع کنند. اونا هفت شبانه روز جشن گرفتند تا اینکه شب آخر آسیابان به روباه گفت حالا چی کار کنیم؟ من که جایی ندارم عروس رو ببرم روباه گفت ناراحت نباش فقط پشت سر من حرکت کن وقتی جشن تموم شد همه آماده شدند تا عروس رو به خونش ببرند و راه افتادند روباه از همه جلوتر میرفت و بقیه هم پشت سرش کمی که رفتند روباه دمش رو چند بار به زمین زد و گرد و قبار زیادی به هوا بلند شد تا گرد و قبار بشینه از فرصت استفاده کرد و خودش را به اردوگاه راه زنار رسوند و به اونا خبر داد که پادشاه مخفیگاه شما رو پیدا کرده و برای دستگیریتون به اینجا لشگر کشی کرده. اگرم باور نمی کنید از گرد و قبار جاده بفهمید. اونقدر تعداد سربازا زیاده که از حرکت اونا گرد و قبار بلند شده. راهزن و حرف روباه رو باور کردند و همگی از ترس داخل انبار کاه پشت کاه پنهون شدند. روباه هم از فرصت استفاده کرد و انبار کاه را آتیش زد بعد خیلی سریع خودش رو به پادشاه و مهمونا رسوند و گفت اربابم برای خوشامدگویی شما دستور داده آتیش بزرگی درست کنند و سربازای شما کنار اون جشن بگیرن و پایکوبی کنند. بعد روباه مهمونا رو به کاخ راهزنا برد. اون شب با خوبی و خوشی سپری شد و عروس و داماد تو خونه جدیدشون زندگی رو آغاز کردند. اما این عروس و دوماد انقدر سرگرم زندگی خودشون شده بودند که روباه احساس کرد کردن و فراموش کردند. و فکر کرد من که این همه به آسیابون خوبی کردم و اونا رو به اینجا رسوندم بهتر امتحانش کنم ببینم قدر محبت های منو میدونه یا نه یه روز صبح قبل از اینکه آسیابون بیدار بشه رفت پشت در اتاقش خوابید. وقتی آسیابون بیدار شد و دید روباه پشت در اتاقش خوابیده، با نوک پا تکونش داد و چند بار صداش کرد وقتی دید روباه تکون نمیخوره با خودش گفت امروز معلوم نیست چه بلایی سر ما میاد که همین اول صبح یه روباه مرده جلوی ما سبز شده و به نوکرش دستور داد که اونو بیرون بندازن و جاش رو تمیز کنند. روباه که انتظار نداشت آسیابان با اون این رفتار رو بکنه دوباره پیش آسیابان رفت و گفت ای آسیابون بیچاره من این همه به تو خدمت کردم. حالا تو از مردن من حتی ناراحت هم نشدی و مثل آشغال منو بیرون انداختی وقتی دختر پادشاه اسم آسیابون رو شنید فهمید به اون کلک زدن و این مردک همون آسیابانه نه ارباب پس تصمیم گرفت از اون جدا بشه و ماجرا رو به پادشاه خبر بده تا اونو مجازات کنند آسیابون بیچاره وقتی دید همه چیز داره خراب میشه دست به دامن روباه شده از اون معذرتخواهی کرد و خواهش کرد کمکش کنه. روباه دلش برای آسیابون سوخت. رفت و به دختر پادشاه گفت ای دختر گاوچرون کجا میری؟ دختر پادشاه با خود فکر کرد روباه عقلش رو از دست داده. آسیابون هم سری خودش رو به اون رسوند و گفت این روباه پیر شده و حواسش پرته به تو که دختر پادشاه هستی میگه دختر گاوچرون پس تعجبی نداره به منم که اربابش هستم بگه آسیابون نباید به حرفش اعتماد کنی دختر پادشاه هم قبول کرد و به کاخ برگشت و سالهای سال کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند روباه هم با اونا خداحافظی کرد و رفت تا یه آسیابون دیگر رو پیدا کنه تا اون رو هم به آرزوش برسونه. اگرچه بعد از رسیدن به آرزوهاشون روباه پیر و دانا رو فراموش میکردن.